اصل از اش ریختن باز میماند و نرم میگوید. گیل مرد ریز نقش من بیا و قصه های عشق های مجعول دیگران و آواز های متربان بی عشق را رها کن تو نگاه عاشقانت را آشغان نگهدار و کلام ساده عاشقانت را خالصانه بگو. من خلوص را به خوبی تشخیص میدهم و آرام می گیرم. من جواب میدهم درد این است که در عصر ما خالصانه گفتن را هم یاد گرفتند اصل بیتاب برمیافروزد. اما اما اما نمیشود به خاطر آنها که آشغان گفتن را هرفعی شدهاند از آشغان گفتن و شنیدن چشم پوشید و به قزل قدما چون قدیمی و صادقانه است قناعت کرد از این گذشته بسیاری از آنها که دروغهای خوب عاشقانه میگویند یا آوازهای ریاکارانه خوب عاشقانه می‌خوانند از خادمان عاشقان صادقند نه از خدمتگزاران عشقهای جعلی و مصنوع خیش از این گذشته تر بگو شنوم فاصله معیاری است برای انتخاب ارتفاع صدا از این گذشته هیچ اصری نیست که اصر عاشقان صادق نباشد فقط تعدادشان کم است که همیشه خدا کم بوده است و همین قلت آشغان زیستن است که به عشق شکوهی تا این حد عظیم بخشیده است. از این گذشته تو اینک از عشق انسان به انسان مکمل خیش سخن میگویی. حال آنکه صد صدگونه عشق با استحکام باقی است و در خط گسترش و از همه اینها گذشته این تویی که شاید روح را چند سباهی به دلایلی به خستگی و دل را به مردگی واسه پرده ای. و الا پیش از حمله دوم مغلها، پیوسته از ملت عاشق مردم عاشق و سلطه ناگزیر عشق بر جهان میگفتی. نمیگفتی؟ میگفتم و میگویم. اما ایکاش معدودی از آنها که از عشق میگویند، دستکم معنای آن را بدانند یا حسی از عشق را در قلب هایشان احساس کنند با این وجود گلعت را رد نمی کنم و منطقت را مردود نمی اینکه کودکان شیرخاره و تنپرستان بیکاره پیوسته از عشق می گویند، گناه من و تو نیست اصل آن است که تو داری و شاید زنان دیگری نیز داشته باشند که باید گهگاه در آنها چیزی نوشته شود در میزنند. زنگ دو طرف خراب است تو از پنجره نگاه می قریبند و بعد حیبت باز کن و اگر طول مدت تنهایی آزارت داد تا بازگشت من به سبلان برو خبر تازهی هست زیر پله گمان میکنم باشد مدت هاست آن گفتگوی طولانی که میخواستی بماند تا من بازگردم مطمئنی که میبرندت بردن که میبرند فقط ممکن است ماندنم کوتاه باشد اگر ممکن بود گهگاه بدیدنم بیا میبینی که عشق همچنان فرمان میراند و میترساند دیل مرد کوچک اندام بزرگ بپرسم که چرا به هنگام راه رفتن کمی سنگینیت را به راست می دهی پای چپم را زیر شکنجه مختصری شکستند کمی لنگیدنم برای همین است کوشیدم به خاطر تو نشان ندهم که این پا انگار کمی از آن پا کوتاختر شده است نتوانستم خجلم که کلامم به قدر کلام مولوی حافظ، عراقی، شاملو و همه آنهای دیگر زیبانیست چه کنم که عشق زندگیم را از صدها جهت جرفا بخشید اما بهتر نوشتن را هنوز به من نیاموخته است خواستم مدتها قبل که سکوت عاشقانه را بیاموزم تو نخواستی حال تصور کن که گنگی ناتوان از نوشتن از عشق خیش با تو میگوید دفترت را زنده نگهدار نمی شود که بهار از تو سبستر باشد نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد گل از تو گلگونتر امید از تو شیرینتر نمی شود پاییز، فضای نمناک جنگلیش، برگهای خسته زردش، قمگین تر از نگاه تو باشد. نمی شود می نمی شود آوازی که مردی روستایی عاشق با صدایی صاف در اعماق در می در شمال شمال رنگین تر از صدای تو باشد. نمی‌شود که بهار از تو سبز تر باشد و صدای شیعه اسبی تنها در ارتفاع کوه و صدای گریه سرداب رود زمانی که تنگه ونداربن را میساید و صدای آبر پیری که آب می‌خواهد به عمق یک سلام تو باشد شب هنگام که خسته ایم از کار که خسته ایم از روز که خسته ایم از تکرار نمی شود که بهار از تو سبز تر باشد نمی شود که تو باشی به مهربانی محتاب در آن زمان که روح درد من گردم بستری می جوید بالینی میخواهد تا شاید دمی بیاساید ساید نمی شود که تو باشی به مهربانی محتاب و این روح دردمند ولگرد باز هم کوله را زمین نگذارد و سر را برزانوی مهربانی تو. نمی شود که بهار از تو سبستر باشد، شکوف از تو شادابتر، پاییز از تو قمگین تر. نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد، نمی شود که تو باشی ترانه هم باشد. نمی شود که تو باشی گلدان یاس هم باشد. نمی شود که تو باشی بلور هم باشد. نمی شود که شب هنگام اتر نگاه تو باشد. محبوب های شب هم باشند. نمی شود که تو باشی من عاشق تو نباشم. نمی شود که تو باشی درست همینطور که هستی، و من هزار بار خوب تر از این باشم و باز هزار بار آشغ تو نباشم نمی شود نمی‌شود که بهار از تو سبزتر باشد از گیل مرد ریز نقش برای اصل تفرجگاه عاشقان زندان قزل قلعه بندسه. فروردین 1355